حالی یا مصلحت وقت در آن می‌بینم که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم جام میگیرم و از اهل ریا دور شوم یعنی از اهل جهان پاک دلی بگزینم جام می و از اهل ریا دور شوم یعنی از اهل جهان پاک دلی بگزینم جز سراهی کتابم نبود یار و ندین تا حریفان دغا را به جهان کم دینم سر به آزادگی از خلق برارم چون سر گرده دست که دامنز جهان درچینم بس که در خرقه آلوده زدم لاف صلاح شرم از رخ ساغی و میرنگینم سینه تنگ من و بارغم او حیحات مرد این بار گران نیست دل مسکینم من اگر رند خراباتم و گرزاهد شهر این متاعم که همی بینی و کمتر زینم بنده آصف عهدم دلم از راخ مبر که اگر دم زنم از چرف بخاخت کینم بر دلم گرد ستم هاست خدایا مبسند که مکدر شود آینه مهر